شنیدم که به تازگی به ایران بازگشته اید بله حدود یک ماه در ایران نبودم به کجا سفر کرده بودید؟ به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم من مدیر یک شرکت تجاری هستم پس به یک سفر کاری رفته بودید بله چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید؟ بله تا کنون موفق موافق بوده ایم و می خواهیم تجارت خود را با ترکمنها و ارمنیها توسعه دهیم چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید؟ ترکمنها و ارمنیها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید؟ از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز کشاورزی و دامی وارد می کنیم. بسیار آلیست است موفق باشید.